بعد رفتیم به بحث ایمان به خداوند یکتا و فضیلت ایمان به خداوند یکتا اون چیزی که ایمان به خداوند یکتا را از بین میبره شرک کفر نفاق اکبر هست که ما باید بدونیم که چه شرک هست چه کفر هست و چه نفاق هست نفاق اکبری که این ایمان به خداوند رو از بین میبره ایمان رو نابود میکنه ما از فضیلت کلمه توحید کلمه لا الله و فضیلت مسلمان شدن، مؤمن شدن، گفتیم که سبب میشه انسان وارد بهشت خدا بشه و اگر شرک انسان انجام بده از این فضیلت محروم میشه و بهشت هشت خداون بر اون شخص حرام میشه پس انسان باید بدونه که چه چی چیز شرک هست که انجام نده تا اینکه خداوند ازش ناراض نباشه و خشوگین برش نشه و او را خالد مخلد در جهنم قرار نده ما باید بدونیم شرک چی هست ما یاد میگیریم از بیانبران خداوند که همیشه از شرک میترسیدن همونطور که ابراهیم علیه السلام دعاش به پروردگار، به, پروردگار به خداوندی یکتا تا چنین بود دعا میکد از خداوند میخواست و جلومنی و بنی نعبود الاسلام پروردگارا مرا و, فرزندانم. مرا و فرزندانم از شرک دور نگه بدار بله این بودن پیامبران خداوند از شرف می چون عاقبت خیلی بدی داره چون انسان اگر وارد جهنم خدا شد و بهش برش حرام شد دیگه هیچ وقت بوی بهش به مشامش نمیرسه این دنیا دنیای امتحانه دنیای که چند روزی بیش ما درش زنده نیستیم و بعد از اینکه از این دنیا رفتیم دیگه باز بار دیگر به اینجا بر نمیگردیم که دوباره پرونده ای را پر بکنیم و بعد توبه بکنیم به خودمون و بهشت خداون خداوند را بر خودمون فرض کنیم خیر دیگه راهی برای برگشت نیست دیگه اونجا جای افسوس هست جای پشیمانی هست انسان نمیتونه بر بگرده که دوباره عمل انجام بده و دوباره بخواد پرونده دیگری برای خودش باز بکنه اینجا اگر ما مردیم دیگه پرونده اعمال بسته میشه یا جهنمی هستیم و یا بهشتی حال این شرک چی هست ما باید بدونیم شرک یعنی چی شرک چی هست شرک ضد توحید هست زد یکتاپرستی هست توحید از یک تا قرار دادن وحدت یوحد توحید یه چیز را یکی قرار بدیم شرک شریک که به خداوند قرار بدیم در اون یکتایی. یه چیزی کنار خداوند قرار بدیم که او را بپرستیم تعظیمش بکنیم محبتش داشته باشیم همونطور که محبت خداوند داریم. او را بزرگ بپنداریم چنانچه خداوند را بزرگ میپنداریم اینها نقض توشیده نقض یکتاپرستی است هست. نقض ایمان ما به الله هست. کسی دیگر را همتای خدا داریم قرار میدیم. بس هرگاه همتای برای خداوند قرار دادیم اینجا وارد شرک اکبر میشیم خداوند باید یکتا باشه قل هو الله احد خداوند یکتاست و در همه اعمال ما ما باید خداوند را یکتا قرار بدیم چه در گفتارمون در اون کلمه توحید که ادعا داریم برش بر کلمه بر اسلاممون بر ایمانمون باید خدا را یکتا قرار بدیم با ادعای خودمون و با اعمال خودمون از اون اعمال جوارشی که انجام میدیم از نماز و روزه و از نظر و از به خداوند و تمامی اون اعمال که ما با دست و پا انجام میدیم و اعمال قلبی هم همینطور از محبت گرفته ترس گرفته همه اینها باید خداوند را درش یک طور قرار بدیم اینطور نباشه که فقط ادعای ما به زبان باشه که ما این مؤمنیم ما مسلمانیم تنها به اد... اسلام به ادعا نیست اسلام به عمله ما باید دور باشیم و مثل ابراهیمی که از خدا خواست و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام ما باید چنین باشیم باید پرهیز داشته باشیم باید دوری بورزیم از شرک و از مشرکین هم همینطور همونطور که ابراهیم عليه السلام ما ازش یاد میگیریم وقتی که جلوب قومش می اون اون وقتی که میاد رو به پدرش میکنه و میگوید او قال ابراهیم و ل و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذي فطرنی فانه سيهدين من از شما و اون چیزی که و اون چیزی که می بری هستم به پدرش گفت به قومش گفت مگر خداوند یکتاب من بیزارم از معبودات شما من از هیچ یک از این معبودات شما نمیترسم جز از خداوند یکتا بحث ترس بله انسان نباید از،, از،, از،, از،, از کسی غیر از خداوند بترسه فقط از خداوند یکتا باید بپرسه خداوند در قرآن خطاب به مؤمنین میگیاد فلا خافوهم و خافون این کنتم مؤمنین اگر مؤمنی فقط از من بترسید نترسید بعضیا هستن از مردگان میترسن از بدوها میترسن چنانچه از خداوند میترسن بس این نیست که انسان نترسه از طبیعت از هیچ چی نترسه از شیری از بابری از پالانگی از نمیدونم دونم مخلوقاتی دیگر نترسه، بحث ترس طبیعی نیست، بحث ترس ماورای طبیعت هست، اون چیزی که نمیتونه تونه برسونه، اون چیزی که دستش به ما نمیرسونه نمیرسه ما بترسیم ازش که شاید به ما آسیب برسونه، مثل بعضی ها، که میترسن اگر فلان کار را انجام بدن، اگر پای قبری نرفتن، ذبحی به اون قبر انجام ندادن، اون ولی را یاد نکردن، میترسن که شاید اون ولی بیاد مال اونها را نابود بکنه، دار و ندار اونها را از اونها بگیره. ولی نمیتونه از قبل بیرون بیاد. اون کسی که مرده، اون کسی که از دنیا رفته، دیگه نمیتونه از قبل بیرون بیاد، بیاد به ما آسیبی برسونه. بله این نص آیات و قرآن درش داریم ما. هموتور که خداوند در سوره اعراف میگوید ان الذين تدعون من دون الله عباد ام امثالكم اونهایی که جز خداوند شما صداشون میزنید بندگی عباد بندگی مثل شما هستن. فدعوهم فليستجيب لكم ازشون بخواهید. چرا شما از اونها میخواهید الهم هرجولی میشون بها ام لهم ایدن یبطشون بها پا دارن زیر خاک راه برن یا دست که از زیر خاک بیان بیرون ما نباید از اون مردگانی که نمیتونن راه برن زیر خاک، نمیتونن بیرون بیان از زیر خاک، نمیتونن ببینن، نمیتونم از،, از حال ما باخبر بشن، نباید از اونها بترسیم. ما باید ترسمون از خداوند یکتا باشه. اون کسی که ضررها، اون کسی که خوبیها به دستش هست، فقط خداوند باری تعالی هست که ما باید ترسمون اون ترسی که گفتم، بحث ترس طبیعی نیست، اون ترسی که نباید جز از خدا درش بترسید یعنی اون ترسی که بنده نمیتونه به ما آسیبی برسونه جایی که بنده دستش به ما نمیرسه ما به ترسی که بنده بیاد به ما آسیبی برسونه بیاد بنده به ما ضرری برسونه خیر ما باید از خداوند و از پروردگار یکتا بترسیم ابراهیم که ما آیه ای رو اووردیم در اون خطابی که به پدرش و قومش داشت وقتی که نترسید از بت‌ها تا جایی که بت‌ها را خراب کرد و بعد اون اداتی که اون وسیله ای که بت‌ها را با شکسته شکست بود اومد دست یکی از اون بتای بزرگ داده بود اونها بهش میگفتن که این بتا بهت آسیب میرسونن ضرر میرسونن ولی که هیچ وقت ابراهیم نترسید و بت‌ها را شکست ولی ابراهیم علیه السلام از گفته‌هاش و فرموده‌هاش چنین که خداوند نغ میکنه و کیف اخاف ما اشرتتم بهی و کیف اخافم و ب... چطور من بترسم از اون چیزهایی که شما قرار دادید بوتهایی که شما میپرسید و تخافون انکم اشرکتم بله و شما و شماها از اون چیزی که به خداوند شریک واقع شدید خدا... شما از خدا نمیترسید ترس شما از خدا کجاست؟ اون خداوندی که عظیم هست اون خداوندی که میبیند اون خداوندی که میشنود قادره و اون صفات و اون صفاتی دارد که هیچ یک از مخلوقات ندارند چطور شماها از خداوند می... یکتا خدا نمی ترسید و شرک برایش قرار و شرک در اون عبادتاتون قرار میدید ولی که از خداوند یکتا نمی ترسید ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به سلطانا اون چیزی که هیچ دلیل هم روش ندارید آیا شما دلیل دارید که اون شخصی که یا اون بوتی که اون ازش میترسید آیا شما دلیلی دارید میاد به شما آسیبی میرسونه ضرری میرسونه خداوند داره نکوهش میکنه سرزنش میکنه از زبان ابراهیم علیه السلام چنانچه برش وحش شده بود و چنانچه خداوند داره تایید میکنه ابراهیم سخنش را با قومش بله شرک ما در ترس از غیر خدا داریم و همچنین در محبت غیر خدا وقتی که ما از ولی یا از اون چیزی که غیر از خدا هست ما محبتش داشته باشیم چنان محبت خداوند یک داریم ما اینجا دچار شرک, شرک, شرک, شرک, شرک شدیم در اون عمل قلبی مون ولی خداوند در قرآن از مشرکین یاد میکنه و میگه و من الناس من یتخذون من دون الله يحبون یحبونهم تحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا از مردم کسانی هستن که برای خدا ند شریک قرار میدن که دوستشون دارن چنانچه الله را دوست دارن ولی مؤمنین دوست داشتنشون با مشرکین قابل قیاس نیست مشرکین حبش و نسبت به خدا خیلی شدیدتره تا حب مشرکینی که به خدا دارن مشرک, مشرک حبش نسبت به معبوداتش مثل حب خداونده ولی که مؤمن حبش به خداوند شدیدتره میترسه از خداوند جایی که معصیت خداوند درش هست انجام نمیده به خاطر اینکه مخلوق ازش راضی باشه خدا را تقدیم میکنه در هر کاری در هر عملی مهم اینه که خدا ازش راضی باشه این مؤمنه ای مؤمنی که از خداوند میترسه حق خدا را به جا میاره پس ما در عمل اعمال قلبی از محبت از ترس باد خداوند مادرش یکتا قرار بدیم و خداوند را بیش از همه کس دوستش داشته باشیم و, و, و از همه کس بیشتر از او بترسیم نه اینکه ما گفتیم ترس طبیعی از کسی نداشته باشیم خیر در اون جایی که دست مخلوق بهمون نمیرسه ما از مخلوقات خداوند نترسیم اعمال قلبی حالا چه میخواهد اون عمل قلبی از ترس و محبت باشه که لازمه خواستار و خواستنم هست وقتی که ما دست به دعا بلند میکنیم خود به خود ما رجا داریم تمع داریم که خداوند استجابت بکنه چون محبتش داریم دستمون بهش بلند میکنیم اینها عمل قلبی هست که با اون زبان ما ارتباط داره خداوند من در زمان خواسته که مسیح فقط برای نماز او برپا میداریم و ان المساجد لله همون که مسجد مال خداونده و بهش اشاره کردیم فلا تدعو مع الله پس برای خداوندم در دعا شریک قرار نده از غیر خداوند نخواه چون انسان اگر از غیر خداوند خواست انسان پناه خواست که غیر خداوند او را نجات بده اونجا هست که دلش و تمعش نسبت مخلوق از خدا بالاتر شده بله اون شخصی که در کشتی غرق شود. سوار کشتی شده میخواد غرق بشه نباید جز خدا را صدا بزنه نباید از جز خدا از کسی دیگر تمه داشته باشه و بترسه اونجا خداوند هست که فقط خداوند یکتا هست که فقط میتونه کمکش بکنه و به دادش برسه ما باید اونجا خدا را فقط صدا بزنیم و فقط از خدا باید تمه داشته باشیم فرجاو داشته باشیم و محبتمون باید طور باشه به خداوند که خدای خودمون را با هیچ کسی دیگر عوض نکنیم خدای خودمون را نبنجونیم. محبتش داریم چون خداوند صدای ما رو میشنوه همونطور که صدای مرچه ریز سیاه رنگو میشنوه در دره تاریک صخره سیاه صدای ما رو هم میشنوه خدامون رو با کسی دیگه عوض نکنیم اون خداوندی که سمیع و بصیر است میشنود و میبیند و دلسوز ما هست الرحمن الرحیم اللطیف اینها صفاتی هستن که خداوند از خودش در قرآن گفته تا این که ما محبتش داشته باشیم و شریک براش قرار ندیم در عبادت هامون و اطاعت هامون بله همونطور که توحید ما، همونطور که که خداشناسی و خداپرستی مهمترین واجباته و هدف از خلقت و خداوند پیانبران رو فرستاده به همین و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن برای پرسش برای و انس خلقت نکذا مگر برای پرستش و خداوند میگه پیامبران را نفرستادم مگر برای یکتاپرستی و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشركوا الطاغوت پس بزرگترین واجبات تاپرسی هست که هدف از خلقت و هدف فرستاده شدن بره و در ازای اون در مقابل اون بزرگترین ظلم شرک با خداونده که انسان بیاد یک تا پرستی را پایمال بکنه پرستی را پایمال بکنه حق خدا را پایمال بکنه برای خداوند شریک قرار بده همون طور که خداوند یکتا در قرآن میگوید از سخن لبنان به فرزند لقمان به فرزندش یا بنی یا ان شرک لا بالله ان شرک لظلم العظیم ان الشرك لظلم عظیم شرک ظلمی خیلی بزرگ هست بله هیچ چیزی بالاتر از بزرگتر از شرک نیست چون در مقابل گناه هایی که ما داریم هیچ چیزی بالاتر از شرک نیست چرا چون بهشت خداوند را بر ما حرام میکنه اگر ما گناهی انجام دادیم شاید خداوند ما را عذاب بده سپس وارد بهشت بشیم ولی که اگر ما شرک به خدا آوردیم دیگر خداوند هیچ وقت اون شرک را نمیبخشد چنان که خداوند میگوید در قرآن ان الله لا یغفر ان یشرک به و ما دون ذلك لمن یشاء خداوند شرک اکبر را هیچ وقت نمی نمیبخشد هیچ وقت خداوند شرک اکبر را نمیبخشد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر دون و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء بغیر شرک اکبر را خداوند برای کسی که بخواد میبخشه بلکه ما بدتر از اینم داریم خداوند میگوید اگر شرکی بنده به من اوورد من اعمالش را هباء منثورا قرار میدم و بهشتم را برش حرام میکنم چنانچه خداوند میفرماید انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه و معواه النار کسی که, که شرک به من بیاره من بهشت خودم را برش حرام میکنم و جهنمم برش واجب میگردد بله این شرکی هست که این اینچینین گناهی هست که گناهی دیگر بالاتر از اون نیست و سبب میشود بهشت خداوند بر ما حرام بشود و رسول الله صلی اللہ علیہ در تعریف شرک میگوید ان تجعل لله ندن و هو خلقه در تعریفش وقتی که میپرسند رسول الله صلی علیه و وسلم پرسیدی میشه ایو غنب اعظم چه گناهی بزرگتر هست چه گناهی گناه سنگینی هست رسول الله صلی الله علیه و می ان تجعل لله ندن و هو خلقت خداوند میگه خالق تو هست خداوند میگه تو را آفریده برای شریکی قرار بدی در دعایت در عمل قلبت در اعمال جوارحت ما نباید جز خداوند کسی دیگر را براش در اون عبادتمون شریک قرار بدیم خداوند ازمون خواسته که ما او را بپرستیم هدف از خلقت ما این بوده خداوند دوست داره ما سر به سجده بذاریم و ویراش انجام بدیم، تعظیمش بکنیم، خداوند ازش بترسیم، بریم به مسجد نماز بخونیم. برای چی نماز بخونیم؟ به خاطر اینکه از عقوبتش میترسیم، به خاطر اینکه میترسیم بهشتش اون نعیم ابدی، اون خوشی ابدی از ما بگیره. ما میرویم، میترسیم ازش، میرویم نماز میخونیم چون از خدا میترسیم، از غیر از خدا نمیترسیم. هر کسی باشه، پدر بگه، مادر بگه که نماز نخون فرزندم. ما اونجا هست که محبت خدا را بر محبت پدر و مادر ترجیح میدیم میگیم خیر ای پدر و مادر محبت من نسبت به خداوند به نسبت محبت شما قابل قیاس نیست. من حاضر نیستم. محبت خداوند را با محبت شما عوض بکنم. من میرم سر به سجده خداوندی میذارم که مرا آفریده درست ای پدر و مادر شما وسیله بودی برای وجود من برای به دنیا آمدن من ولی بل که اون کسی که مرا آفرید خداوند باری تعالی هست. اون خالقی هست که این منت را بر سر من گذاشت و این چش و گوش برا من گذاشت که شکر و سپاسش را به جا بیارم و سر به سجدهش بیارم و ازش بترسم و محبتش رو داشته باشم و اظهار بکنم. عبودیت خودم بندگی خودم را به نسبت او اگر من این حق را پایمال کردم اگر حق عبودیتش پرستشش بندگیش را من به دیگه من بنده خالق نیستم من بنده مخلوقم من بنده دنیا هستم نه بنده خداوند یکتا. انسان با شرک دیگه از دایره بندگی خداوند و یکتا پرستی خارج میشه گفتم چه میخواد اون شرک در زبان باشه چه میخواد در اعمال باشه و با چه میخواد در اعمال قلب باشه ما باید خداوند یکتا را بپرسیم و او را در عبادتها و ها یکتا قرار بدیم و دعوانا الحمد الحمدلله رب العالمین صل الله على محمد و علی آل محمد